فصل پ فراموش کردم از خاطراتش در ارتش بپرسم ولی شاید بعدها چنین فرصتی پیش بیاید. شک ندارم از غذای آنجا تعریف می در خانه نمی توانست به این خوبی بخورد و رنج و زحمتی که کشیده بود را از لحاظ تربیتی بسیار با ارزش میدانست و برخورد با مردم عادی را بسیار عالی همان بهتر که نپرسیدم. او امشب در تخت خواب کنویکت چشم هم نخواهد گذاشت با وجدانی ناراحت از این دنده به آن دنده خواهد شد و از خودش خواهد پرسید کار درستی کرده که پیش من نیامده دل هم میخواست در خیلی چیزها با او حرف بزنم بگویم فکر درس خواندن در بون را از سر بیرون کند و در آمریکای جنوبی یا مسکو یا هر جای دیگری از دنیا الهیات بخواند. او باید درک کند که چیزی که او ایمان می‌آورد جایی در بون ندارد. در بون بین زومرویلد و بلوترت یک شنیر تازه کاتولیک شده که حتی ممکن بود کشیش هم بشود وجود داشت اما سزاوار آن نبود. لو بیشتر به درد ثابت نگه داشتن نرخ سهام می‌خورد. من باید یک بار در این باره با او حرف بزنم. بهترین وقت این کار در یکی از دوره‌های مادر بود. ما دو نفر پسران فراری پیش آنها در آشپزخانه مینشستیم، قهوه میخوردیم و از گذشته حرف میزدیم. زمانهای باشکوهی که در باغ خانه با نارنجک تمرین میکردند و ماشینهای ارتش جلوی در ورودی مییستادند تا کسانی را که قرار بود پیش ما مستقر شوند پیاده کنند. یک افسر سرگرد یا سرهنگ یا چیزی شبیه به آن با سربازان و درجه داران صف شده بودند و تنها به نیم کنیاک، سیگار و شوخی های دستی با دختران خدمت کار فکر می کردند. گاهی هم رسمی می شدند. خودشان را می آن وقت افسر سینش را سپر می کرد. جلوی خانه میآمد و حتی یک دستش را زیر کتش میکرد مثل هنر پیششه آشغالی که بخواهد نقش یک سرهنگ را بازی کند دم از پیروزی نهایی میزد. واقعا ناراحت کننده مزهک و احمقانه بود وقتی معلوم شد که خانم وینکن شبانه و پنهانی با چند زن دیگر از راه جنگل از میان خطوط آلمانی ها و آمریکایی‌ها رد می شده تا از برادرش که آن طرف دکان نان وایی داشت نان بگیرد صحبت از بی احترامی به مقررات ارتش پیش آمد و افسر می‌خواست خانم وینکن و دو زن دیگر را به جرم جاسوسی و خرابکاری تیرباران باران کند خانم ویناکان در بازجویی اقرار کرده بود که آنجا با یک سرباز آمریکایی حرف زده است. در اینجا پدرم تا جایی که من می‌دانم برای دومین بار در زندگی قدرت به خرج داد و زنها را از زندان موقت، یعنی اتاق اتوكشی ما، بیرون آورد و جایی که قایق خاران را نگه داشتیم، آن پایین نزدیک ساحل مخفی کرد. شجا شده بود. سر افسر فریاد می‌کشید: "افسر همسر او" موزکترین چیز نشانهای افسر بود که از خشم روی سیناش می درزید. در حالی که مادرم با صدای ضعیف و لطیفش می گفت آقایان من، آقایان من هرچه باشد حد و حدودی وجود دارد چیزی که در این جریان برایش ناراحت کننده بود این بود که دو آقا سر هم نره میکشیدند. پدرم گفت: قبل از اینکه بلایی سر این زن بیاورید باید من را تیر باران کنید بفرمایید و واقعا دکمه کتش را باز کرد و سییناش را جلوی افسر نگهداشت. ولی سربازان رفتند چون آمریکای ها دیگر به بلندی های راین رسیده بودند و زنها توانستند از مخفیگاهشان بیرون بیایند. ناارحت کننده ترین چیز در وجود این سرگرد یا هرچه که بود نشانهایش بود شاید اگر اینقدر نشان به خودش آویزان نمیکرد تا این حد بی شخصیت به نظر نمیرسید وقتی من این پاچه ورماللیده های کثیف را در دوره های مادر می بینم که با نشان همیشه به یاد این افسر میافتم. نشان نشانهای زومرویلد برایم قابل تحمل ترند. زومرویلد دستکم برای کلیسایش کاری ماندنی میکند. او از هنرمندان حمایت میکند و به اندازه کافی سلیقه دارد که نشانهایش را به سینه نزند. او آنها را فقط هنگام مراسم نماز رسمی و مواهزات تلویزیونی به سینه میزند. اگر عصر ما مستحق نامی باشد، باید اثر فحشان امید شود. مردم به تدریج خود را با فرهنگ فاحشگی وفق می‌دهند. یک بار زومرویلد را بعد از یکی از بحث های تلویزیونیش با موضوع آیا هنر جدید می‌تواند مذهبی باشد دیدم. از من پرسید: به نظر شما خوب بودم؟ طوری شمرده میپرسید و می‌خواست مهر تایید بر رانیش بزنم که فاحشهی از مردی که کارش را تمام کرد و میخواهد برود می‌پرسد. فقط این را کم داشت که بگوید مرا به دیگران توصیه کنید. به او گفتم نه شما خوب نبودید. با اینکه نظرم را با ملاحظه گفته بودم غمگین و در هم شکسته شد. او در بحث رفتار نفرت انگیزی از خود نشان داد. او هم صحبتش را که یک سوسیالیست بیچاره بود سر برید و سلاخی کرد. با او مثل یک خوک رفتار کرد. زومرویلد با حیلگری از او پرسید عجب پس شما کارهای اولیه پیکاسو را آبستره میدانید و مرد پیر پیرو موسفیدی را که چیزی درباره تعهد زمزمه کرده بود جلوی ده میلیون نفر تماشاچی با این کلمات سر برید آخ گویا مقصودتان هنر سوسیالیستی است یا حتی رئالیسم سوسیالیستی وقتی روز بعد او را در خیابان دیدم و به او گفتم که به نظرم افتضاح بوده رنگ از رویش پرید. دلش میخواست زمین دهان باز کند و او را ببرت. اینکه یکی از ده میلیون از او خوشش نیامده غرورش را جریحه دار کرده بود ولی این احساس جریه شده با یک موج حقیقی تمجید در تمام روزنامه های کاتولیکی جبران شد. آنها نوشته بودند او برای امری خیر یک پیروزی بزرگ به دست آورده است. یکی از سه سیگار باقی منده را آتش زدم گیتار را برداشتم و صدایش را درآوردم. فکر کردم بله او چه میخواستم بگویم همیشه هر وقت لازم بود با او جدی صحبت کنم یا مشغول امتحان دیپلم بود یا از یک اسکروتینیوم میترسید فکر کردم واقعا باید مرسیه ی را بخوانم. اگر نمیخاندمش بتر بود ممکن بود کسی فکر کند کاتولیکم و بگوید یکی از خودمان و این برایشان شما حکم تبلیغ داشت آنها همه چیز را به خدمت می‌گیرند آنها مرا به تلویزیون میکشاندند و آن وقت برایم سخت بود که توضیح دهم من کاتولیک نیستم و فقط چون از دخترک یهودی که این مرثیه درباره اوست خوشم میآید آن را خواندم کسی این را درک نمی‌کرد و آنها با حقه چند میلیون کاتیون در من کشف می‌کردند خلاصه آشفته بازاری می شد و نرخ سهام بالاتر می رفت. باید آواز دیگری می خواندم هرچند واقعا مرسیه ی را دوست داشتم. ولی روی پله های ایستگاه راه آهن بون فقط می توانست سوء تفاهم ایجاد کند. هیف. من خیلی تمرین کرده بودم و می توانستم آن را به این قشنگی با گیتار بزنم. بلند شدم تا برای اجرای نمایش آماده شوم. شک نداشتم که اگر مدیر برنامه هایم تسونرر میفهمید که من گیتار به دست در خیابانها آواز میخوانم قیدم را میزد. اگر او به آوازهایی که این سالها در وان هم ما می گوش میداد نظرش عوض می شد و دوباره برایم کاری دست پا میکرد. حقه خوبی بود چیزی شبیه نقاشی کشیدن از مریم حتی باور میکردم که دوستم دارد. بچه های این اصر سمیمی تر از بچه های عصر روشنگریند ولی اگر خبردار می شد که برای گذران زندگی روی پله های ایستگاه راه آهن بون می نشینم و آواز می خوانم ها. کارم ساخته بود دوباره می توانستم بدون لنگ زدن راه بروم این موضوع صندوق پرتغال را منتفی می کرد فقط باید یک بالش زیر بقل چپم بزنم و گیتار را زیر بغل راستم و سر کار بروم هنوز دو نخ سیگار داشتم. می توانستم یکی را بکشم و دیگری را برای جرب نظر آبران در کلاه بیاندازم. اگر یک سکه هم که بود خوب بود. جیب شلوارم را گشتم اما به جز چند بلیط پاره شده سینما، یک مهره قرمز منچ و یک کاغذی کثیف چیزی پیدا نکردم کشوی جالباسی راهرو را بیرون کشیدم. یک ماوت پاک برگ اشتراک روزنامه کلیسای بن و رسیده یک بطری جو خبری از پول نبود تمام کشوهای آشپسخانه را گشتم بعد به اتاق خواب دویدم و میان دکمه های سرده است. تلخ های یقه جوراب و دست گشتم حتی جیب های شلوار چهارخانه سبز را بیفایده بود شلوار تیر رنگ را بیرون آوردم آن را همون مثل پوستی که غلاف کش شده باشد روی زمین گذاشتم پیراهن سفید را نزدیکش پرت کردم و پیراهن آبی کشباف را روی سرم پایین کشیدم سبز چمنی و آبی روشن در آین دار گنج را بستم آلی هیچ وقت به این خوبی نبودم. مایه گریم را خیلی کلافت به صورتم ماریده بودم چربیاش در سالهایی که آنجا مانده بود خوشک شده بود و در آینه می دیدم که روی صورتم ترک برداشته بود ترکها مثل صورت مجسمهی که از زیر خاک بیرونش آورده باشند به نظر می آمد و موهای تیرم چون کلاه گیز بر روی آن افتاده بود شعری را که همان موقع به یادم آمده بود زیر لب زمزمه کردم پاپ یوهن بیچاره گوشش به حزب مسیحی به دکار نیست او خر آسیابان نیست او گاو آسیابان را نمی خواهد. برای شروع کار بد نبود و کمیته مرکزی مبارزه با الهات هم نمیتوانست توانست با ایرادی بگیرد باید چند بند دیگر به شعر اضافه و تمام آن را با موسیقی همراه میکردم. دلم میخواست گریه کنم اما گریم صورتم نمیگذاشت. با ترک هایش با جاهایی که شروع به پوست شدن کرده بود شکل خوبی داشت. اشک خرابش میکرد. توانستم بعدن بعد از پایان برنامه گریه کنم. البته اگر هنوز گریم میآمد ظاهر هرفهی بهترین محافظ است. فقط کار آماتورها و قدیسین بازی مرگ و زندگی است؟ همونطور که بیشتر در خودم فرو می رفتم و از خودم بیشتر فاصله می گرفتم از جلوی آینه کنار رفتم اگر ماری مرا با این حال می دید و هنوز می توانست لکه های شام را رو از روی ردای شعالیه یه سند پاک صبح کند دیگر برای من مرده بود و ما از هم طلاق می گرفتیم آن وقت می توانستم سر قبرش اشک بریزم و ماتم هم بگیرم امیدوارم همه به اندازه کافی پول خرد همراهشان باشد او کمی بیشتر از ده فنینگ ادگار وینکن وقتی از تایلند برگردد شاید یک سکه طلای قدیمی و پدر بزرگ وقتی از ایشیا بیاید، دستکم دست کم یک چک غیر نقدی برایم می دیگر یاد گرفته بودم چطور چک را نقد کنم مادرم شاید سکه دو یا شاید پنج فنینگی بیاندازد مونیکا زیلفز شاید خم بشود و مرا ببوسد زومرویلد، کینکل و فرید در حالی که نفرتشان را از بی نشان می دهند بدون اینکه حتی یک سیگار در کلاه بیاندازند، از کنارم رد می شوند. در میان کار وقتی مطمئن بودم برای چند ساعت قطاری از جنوب وارد ایسکانه می شود می توانستم با دوچرخه خودم را به زابین امانز برسانم و سوپم را سر بکشم شاید زومرویل به تس فنر در روم تلفن کند و به او توصیه کند که در گودسبرگ از قطار پیاده شود در این صورت سوار دوچرخه میشوم و جلوی ویلایی که باغش در سراشیبی قرار دارد می نشینم و می خانم. او باید بیاید و مرا ببیند یک نگاهش کافی است تا بدانم برایم مرده یا هنوز زنده است تنها کسی که دلم به حالش میسوخت پدرم بود او لطف بزرگی کرد که زنها را از تیرباران شدن نجات داد و دستش را از روی محبت بر شانه هم گذاشت در آینه می دیدم که صورت گیریم شدم شباهت زیادی با پدرم دارد و حالا می فهمیدم که وقتی با کاتولیک شدن لئو مخالفت می کرد چه احساس درد و وری داشت با لئو هم دردی نمی کردم قرچه بود او ایمانش را داشت وقتی با آسانسور پایین می رفتم ساعت هنوز نهانیم نشده بود به یاد آقای کاسترت مسیحی افتادم که هنوز یک شیشه عرق و اختلاف بهای بلیت درجه یک و دو را به من بده کار بود یک نامه بدون تمر برایش می نویسم و وجدانش را به لرزه در می او همچنین باید رسید دریافت چمدانها را برایم بفرستد خوب شد که به همساییم خانوم گرپسل زیبا بر نخوردم اگر نمجبور بودم همه چیز را برایش توضیح بدم ولی حالا وقتی مرا روی پله های راه آهن ببیند دیگر احتیاجی به توضیح نیست تنها کمون کسری کارت ویزیتم بود بیرون هوا سرد بود هوا یه شب ماه مارس یقه کتم را بالا زدم کلا هم را سرم گذاشتم و در جیبم دنبال آخرین سیگار گشتم یاد بطری کنیاک افتادم به عنوان دکور صحنه میتوانست اثر خوبی داشته باشد ولی جلوی همدردی مردم را می گرفت چون از چوب پنبهش می شد فهمید که از آن کنیاک های گران قیمت است. بالش زیر بغل چپ گیتار زیر بغل راست به ایستگاه راه آهن برمیگشتم. در راه متوجه نشانه های زمانی شدم که اینجا به آن عصر دیوانه میگویند. جوانی که ماسک فیدل کاس رو زده بود سعی کرد. تنه محکمی به من بزند. خودم رو کنار کشیدم. روی پله های ایستگاه، گروهی از گافبازان و زنهای اسپانیولی منتظر تاکسی بودند. فراموش کرده بودم که وقت کارنوال است. موقعیت خوبی بود. برای مخفی شدن یک هرفهی، هیچ جا بهتر از جمع آموتورا نیست بالشم را روی پله سوم گذاشتم نشستم کلاه را از سر برداشتم سیگار را تویش گذاشتم نه نکنار. نه کنار. آن را به شکلی گذاشتم گنگار از بالا در کلاه افتاده است شروع به خواندن کردم پاپ یو بیچاره هیچ کس به من توجه نکرد. البته خوب نبود که به این سرعت توجه کنند. بالاخره بعد از یک دو سه ساعت توجهشان جلب میشد. وقتی صدای گوینده ایستگاه را شنیدم برنامهم را قطع کردم. ورود قطاری را از هامبورگ اعلام کرد. دوباره شروع به زدن کردم. وقتی اولین سکه توی کلاهم افتاد ترسیدم. یک سکه ده بود. به سیگار خورد و آن را به طرف لبه کلا کشاند. سیگار را سر جایش گذاشتم و به خواندن ادامه دادم